حکایت تنی چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امروز تو را چه گفت در فلان مسلحت. گفت بر شما هم پوشیده نباشد. گفتند آنچه با تو گوید به امثال ما گفتن روا ندارد. گفت به اعتماد آنکه که داند که نگویم. پس چرا همی پرسی؟ نهر سخن که براید بگوید اهد شناخت، به سر شاه سر خیشتن نشاید با.